بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله والصحبه أجمعين ما بعد جاردهم من درسات درسية سورة يوسف قيسي ويك فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدد لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه جامعي الزنار جامعي حمسر عزيز مصر برأي توجيه گناه و معصیتش مکری میکنه نیرنگی میکنه همون تا کنان مکری کردن نیرنگ کردن این اومد انتقامش رو بگیره که گناه خودش رو توجیه بکنه شما میگید که من چرا اقوار شدم چرا این کارو کردم با یوسف حالا شما هم ببینید شما چی میشه بر شما چاخور خور بینده دستشون میوه رو دستشون در حینی که داشتن میوه هاشون میبریدن گفت یوسف بیاد آخر یوس یک قاعده کلی هست انسان وقتی که یه چیزش شکف زدهش میکنه یا یه چیزی غمگینش میکنه دردش فراموش میکنه انسان وقتی مشغول یه کار دیگه هست حواسش پرت، مشغول مطالعه، مشغول آشپزیه دیگه در اون لحظه ذهنش به جای دیگه کار نمیکنه مشغول بریدن میوه بودن در همون حین یوسف میاد اینا شکف زده میشه تسوشانو میبره این طبیعت و خصلت انسانیه وقتی که انسان مشغول یه کاریه از غم خودش بیخود میشه مرد وص... مثلا به فرض مرد وقتی که در منزل میشینه خودخوری میکنه هی hey, ایراد میگیره غذا شور غذا بی مزه هست. نمیدونم چرا این اینجاست چرا اینجا پاک نکردید چرا اینجا نشستید چرا فلان نکردید دیگه اون زن دیگه بی طاقت میشه بی صبر میشه بی حوصله میشه چون این رفتار شوهر رو میبینه چون شوهر همه چیز رو گنده میبینه بزرگ میکنه خاطر همین توصیه میشه که مردا خودشون مشغول بکنن با اون چیزی که سرعپ بشه اون مشکلات داخل خونه براشون کم رنگ بشه. مسئله دیگر هم که در اینجا هست، این شگفتی که براشون پیش اومد از زیبایی یوسف که بعد گفتن این یک فرشته هست این هادا ایلا ملک کریم. این یک فرشته ای است که مکرم شده با اون زیبایی. مسئله که درش اینجا نوفته است که الله جل شانه برای رسالتش، پیغام خودش کسی را انتخاب میکنه که در کمال اخلاق و زیبایی، چه خلقت ظاهرش و چه خلقش، خلق و خلق که اخلاقش زیباست یعنی باید زیبا باشه و چه اون خلقتش ظاهرش مظهرش برای رسالتش الله این چنین اشخاصی رو انتخاب میکنه برای که مردم عیب نگیرن ازش برای که مردم بهانه نتروشن بگن این بد بد اخلاق این نمیدونم بد دهن این نمیدونم بد سرشته، بد رفتاره بد فلانه بهانه مردم نداشمن بهانه ها را ازشون بگیره الله جل شانو این انتخاب الهی استفاس که در ابتدای سوره بشه اشاره شد و کذل که یجتبی که ربو الله اشتبات میکن انتخابت کرده یوسف این انتخاب رو بهترین انسان ها هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ خلقتی ظاهری و مظهری و جسمی قوت جسمی بر هر دوتا هست انتخاب الهی مثلای دیگر که در یک قصه هست ای قاعده ای هست میگن که زن زنو خراب میکنه یا سیب گندیده بقیه سیبا رو گندیده میکنه خراب میکنه این واقعیت داره یک زن بد اخلاق یک زن که در فاحشه افتاده زنهای دیگر هم میخواد دوست داشته باشه مثل خودش باشن گندیده باشن خراب باشن این یک نوع تحذیره داره نه بر زن فقط ها حتی بر بچه هامون که با کی بیشینن معتاده نشسته باش سبب میشه که ما هم معتاد بیشین مشروب رسول الله صلی الله علیه و سلام این که حق ندارید جایی که مشروب هست جایی که مشروب نگهداری میشه جایی که سفره مشروبه حق ندارید با اون اشخاص نه بنشینید نه رفت و آمد بکنید علت چیه؟ علت این که همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلام مثال میزنن کسی که در آتش میدمه یا بت رو گندیده میکنه میگن فلانی. حتما میکشه که با اون می داره میگرده یا مینوشه باهاشون میگرده یا اینکه از اون در و بلا و مصیبت به تو هم سرایت میکنه و تو هم می سنها میشی این یک هشدار یک تحذیره بر ماها که باقی نشست و برخواست داشته باشی. قالت آیه بعدی آیه سی و دو، قالت دو الذی لمتمنن این همونه که برای من روش ملامت زدید، سرزنشم کردید، نکوشم کردید، دستتون بریدید، دیدید و لقد عن نفسه فاستعصم راودت تلاش کردم برای اینکه برای چیره بشم، به طرف خودم بکشونم ولی که اون راه اسمت را گرفت پاکی و پاکیزگی رو در عفت را در در پیش گرفت. راه پاک دامنین رو در پیش گرفت فرار کرد به خاطر اینکه در فاحشه نیفت. خب این براءت یوسفه یوسف هم در این جمع نشسته در این جم که هست از خوش دفاع هم نمی کنه حرفی نمی زنه فقط طرف حسابش خداست. چنان چه میاد؟ قال الرب سجن و احب إلي. به بار الها زندان بهتر بر من. با زنان نمیاد مراوده بکنه حرف و بحث و گفتگو بکنه. خب میبینین اونها دارن میکنن این از اخلاقشه. جوابشو نمیده اونها مکر میکنن میدونه هم از مکرشون این زلیخا هم داره با اونا حرف میزنه و کمک گرفته از این زنا که یوسف رو در فتنه میندازن داره یاری میطلبه از بقیه که کمکش بکنن همراهیش بکنن برای اغوا کردن و گمراه کردن یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خودش رو در این فتنه میبینه و تهدیدش میکنه اون زن عزیز مصر یک مسئله اینجا که در این آیه هست و الا ان لم يفعل ما امره اگر اون چیزی که من بهش میگن انجام نده لیس جننا ولا يكون من الصاغرین زندانش میکنیم، خوردش میکنیم، زلیلش میکنیم، خارش میکنیم تا کوچک بشه. تهدیده به زندان و ذلت زندان و ذلت این زن وقتی که این چینی حکمی را میده و این چینی سلطه ای داره نقلت بر نفوزشه این زن تواناییشو داره که یوسف را در زندان بیاندازه که این چینی داره تهدید میکنه. اگر نمیتونست یوسف را به زندان بیاندازه که چنین تهدید نمیکه به زندانت میاندازه. خب یک زنه. چطور زن صاحب نفوز شده به این قدرت رسیده؟ وزیر، بازوی راست فرحان، همکاره زمام امور امپراتوری مصر یک زن داره او را میچرخونه بگه به شوهرش فلانی رو زنده میگه چش این نشانه چیه؟ نشانه ذلت اون شوهر، کوچکی اون شوهر نزدی این زن و سلطه و نفوز اون زن بر اون مرد، زن سالاری چی چی سبب میشه که اون مرد که باید قوام باشه؟ باید قدرت بر زن داشته باشه این زن با چشم خودش دید قاضی هم قضاوت کرد که زن مقصره این زن خطاکاره ولی با این وجود این زن نفوز داره بر اون شوهر مشکل کجاست؟ مشکل اینی که اون مرد شخصیت نداره بی شخصیته اون مرد تمامی امور رو به دست زنش سپرده از مالش، از رفت آمدش از نشست و برخواستش رفتم با فلانی نشستم اومدم رفتم خوردم اومدم رفتم فلان کردم اومدم اینقدر پول دارم اینقدر فلانی پولم خورد اینقدر فلانی اینقدر طلب دارم بده کارم کل حساب کتابش موبایلش کل دادست زن... دادستت زندگیش دست زنشه خب زن او را مدیریت میکنه نقطه زف میگیره ها فلانی زنگ زد چه کار داشت چرا اصلا باش حرف زدی همینطور این دخالت. پیش میره پیش میره تا اینکه حتی دخالت به جایی برسه که حتی در رفت آمدش با مادرش هم زنش براش تاسی میگه در رفت آمده با خواهرش با برادرش هم اون زن تاسی میگیره این سلطه از کجا پیش میاد از ضعف شخصیت مرد از عدم قیومیت مرد نقطه ضعف خود مرده به بهانه درد و دل به بهانه مشورت میاد کل زمام امورشو دست اون زن میده و اون زن نقطه ضعف شوهرش میدونه و زن انکیدکن عظیم که دیگه داشتیم دیگه. زن میدونه کجای اون مرد میرنج دستش انگشتش رو همونجا بذاره همون نقطه ضعفش چقدر دیدیم که طرف ارهامش رو قطع کرده ارتباطش با خواهرش و مادرش قطع کرده به خاطر خانمش زنش چون نقطه ضعف دسته اون خانمش رو همسرش داده بس این مسئله هم یک از مسائلی هست که اینجا ما در این قسم ما می‌بینیم نفوذ زن و تسلطش بر شوهرش یوسف هم وقتی که تهدید این زن رو می‌بینه چاره‌ای جز اینکه دست به دعا بکنه نمی‌بینه الله میگه قال رب و احب و بار الله این چیزی که این زن به تهدید داره میکنه این زندانش بهتر از اون فتنه شه تن آدم خسته بشه ولی روح روان آدم خسته نشه وجدان آدم نابود نشه اون وجدانی که در اثر بی افتی در اثر گناه و معصیت پیش میاد قاتل آرامش دیگه نداره حاضره که تنش تکه تیکه بشه ولی اون آرامشش دوباره بهش بر بگرده زناکار هم همینطور خطاکاران چ آرامش روحی و روانی دیگه ندارن. آدمای حسودم هم, هم اینطور. آدمایی که دخالت میکنه تو زندگی اون اون رفت اون اومد این پول از کجا میاره اون پول از کجا میاره. اینها دیگه آرامش ندارن. اشخاصی که آرامشون از دست میدن حاضرن کوهی را بکنن ولی این غم ها از دوششون برداشته بشه. تجربه کردید وقتی که بدهکار میشید. چطور کمر انسان خم میشه از اون خستگی روحی روانی. حاضره که کوه بکنه ولی این خستگی از تنش برداشته بشه. این یوسف اینجا این قضیه رو در میکنه بین این دوتا میگه بار الله ها. این بهتره برام نه اینکه اینو دوست دارم زندان رو دوست دارم رب سجن و احب این محبوبیت به خاطر این نیست که زندانی زندان رو دوست داره نه بحث بحث اینه که این یکی از این یکی بهتره برام بار الله ها تنم خسته بشه ولی روح و روانم نه ولی الله هم از من راضی باشه ناراض نباشه گناهی انجام ندم که بعد رو سخت در جهنم پس بدم اینجا سختی را میکشم ولی اونجا حاضر نیستم سختی را بکشم. بذار این دنیا دنیای سختی است. اسم دنیا دنییه، پست. دنیا برای خستگی اومده. قرار برای این نیست که ما راحت باشیم. دنیا جای خستگیه. نه جای تنبهوری، نه جای راحتی. دنبال راحتی در این دنیا نباش. دنیا جای راحتی نیست، جای خوشی نیست، جای خوشگذرانی نیست. مسئله دیگر هم که اینجا هست اینی که زندان قرار بر این نیست که شما اگر فلانی گفتن زندانی رفته یا زندانش کردن آدم بدیه پیامبری از پیامبران الهیه زندانش میکنن قرار بر این نیست که ما چون مجرمی دزدی قاتلی را میبرن به زندان پس هر کسی تو زندان آدم بدیه یه کسی بهش تهمت میزنن افترا میبندن او را به زندان میندازن مسئله دیگر مظلوم بینش و بین الله حجابی نیست پرده ای نیست یوسف همین که از الله می طلبه واراله زندان برام بهتره آیه بعدی میاد میگه فسجج علیه ربه الله فوراً اون دعاش اجابت میکنه اون مکر رنگ اون زنا به خودشون برمیگردونه سرعت سجابت دعای مظلوم از دعای مظلوم بترسید که بینش و بین الله حجابی نیست قال ربی السجن احب الي مما يدعونني الی از اون چیزی که اینها از من میخوان پس مک مکر دست جمعی بود یعنی همه زنا سرکرده اون مکر نیرنگ شدن بعد از اینکه فقط زلیخا بود دیگه اون زنا هم تمهکار شدن گفتم یک زن بغیزنا رو خراب میکنه اینجا قضیه را به وضوح ما میبینیم در این آیه چنانچه الله نقل میکنه و الا تصرف عنی کیدهون بار ها اگر مکر اینها را از من دور نسازی اسب و الیه وكم من الجاهلین من خطا کار میشم و در جهل و گمراهی میفتم اینجا خطا و انجام یک گناه و معصیت را جهل گذاشت اسمش یوسف من میشم جاهل، خطا جاهله. اگر از رقابت الهی، عذاب سخت الهی میدونست خطا نمی کرد. اگر اون خطاکار میدونست میدونسه، مثلا الله در قرآن میگه: "سزای خطا در جهنم چینه؟ زنجیر آتشینی که در آتش جهنمی داغ شده، از مقدش اون زنجیر را وارد می کنیم و از دهنش بیرون میاریم و بر جهنم آویز می کنیم و غذایش را چرک و خونابه جهنمیانی که از سوختن آتش داره چکیده میشه غذا و آبش رو از اون قرار میدیم خب وقتی که انسان میدونه گناه و معصیت چنین تابانی داره که به زنجیرش ببندن و روی آتش کبابش بکنن میاد اون گناه خطا رو انجام میده؟ نه آتش و جهنم و اون عذابش رو کنجش جلو چش خودش میبینه؟ پس جهل که انسان رو در خطا میاندازه جهل به عقوبته که بر اون خطا الله گذاشته قیبت انسا خیلی راحت میگیره چون عقوبت الهی را جلوی خودش نمیدینه فسجاب له ربه فسرف عنه کیدهن الله که دعاش سجابت میگیره الله که یوسف را نجات میده یک مسئله که اینجا الله بهمون یاد میده هیچ وقت به نفس خودت اعتماد نکن این که میگن در علم روانشناسی اعتماد به نفس اعتماد به نفس خودخواه نشو به خودت نناز الله بخاطر تو را نجات نده نجات گری برات نیست اینجا یوسف به خودش به غرورش به زورش ننازید مغرور نشد اقرار به زعف خودش کرد گفت بار الله اگر توم رو از مکرونی رنگی رو نجات ندی من نجات دهنده ندارم بار الله واضح میگه الا تصرف عنی که دهون اکون الا تصرف عنی که دهون اصبو ایلین اگر مرا نجات ندی من در خطا میفتم زعف اقرار به زعف با اعتماد بر الله یکتار ومن یتوکل الله فهو حسب اون کسی که بر الله اعتماد میکنه الله کفایتش میکنه پس ما اعتمادمون بر الله باید باشه نه بر نفس خودمون نفس ما هرچی باشه زیفه اینجا پیامبر الهیه ولی اقرار به ضعف میکنه میگه من زیفه وقتی که تو اقرار به ضعف کردی نیاز کردی اونجا هست که الله تورا بی نیاز میسازه اونجا هست که الله تو رو کمک بیاری میده و ایلاش تو میشی متکبر و مغرور اینه هو سمیع العلیم الله میشنود و میداند اللهه. ای محمد بدان هر کسی هر توتعی بکنه، بر چون این سوره نازل شده در مکه برای دلداری رسول الله صلی الله علیه وسلم بدان الله سخنانه هل حیله مکاری رو میشنوه هر کسی که داره توته میکنه تخریبت میکنه مردم رو از دور میکنه نسبت دعوت تو رو در نزد مردم بدبین میسازه تهمت بهت میزنه افترا بهت میبنده بهت میگه جادوگر ساحر هر چیزی میخواد بگه الله داره سخنانشون رو و الله علیمه عالمه به این که این خطاها چطور جلوش بگیره و چطور اونا رو خرد بکنه برخلاف اون مکرشون مک در اصل اینا در پیش گرفتن که یوسف رو از پادر بیارن ولی جوابش برعکس چون اینا با الله طرف شدن و یم و الله والله خیر الماکرین هرچقدر مک بکنن طرف اصلا بشون چون الله, الله جواب مکرشون مکر بزرگتری میده عقوبتی بدتر و سختتر درد و رنجی بدتر همه اینا رسواه شدن چه بدتر از رسواهی این زنانی که اینچنین مک کردن و اینچنین نیرنگ بکار بردن رسال الله علی, علی محمد و محمد